بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته ومن مخلقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا حمد الله قيل لك من ربك كجا توی قبل اگر ازت سوال شد پروردگارت کیه چی میگی چی باید جواب بدی نه این که تنها در قبر حتی در این دنیا اگر کسی ازت سوال کرد چرا مسلمونی چرا خدا پرستی چرا نماز میکنی چرا روزه میگیری جواب چی چی باید جواب بدی جواب اون اینه فخر ربی الله الذی ربانی پروردگارم این کسی که مرا پرورش داده ربانی معنی پرورشه منو پرورش داده شاید پرورش در اصطلاح خودمون پرورش اخلاقی باشه. جنبه معنوی داشته باشه ولی پرورش بدنی هم هست. پرورش از یک لحاظی معنوی از لحاظ دیگه پرورش مادی هست. پروردگار من اون کسی هست که من را پرورش داده و رب با جمیع العالمین به و همه, همه را با های خودش پرورش داده. هم با نعمت‌های مادی و هم با نعمت‌های معنوی ما دیشب اشاره کردیم از پرورش معنوی فرستاد شدن پیانبرانه فرستاد شدن پیانبران بزرگتری نعمته که در این دنیا خدا بهمون به داده که ما مسلمانیم صاحب قرآنیم و همچنین صاحب سنتیم این یک از بزرگترین نعمت‌هایی هست که خداوند در این دنیا به ما داده و جای شکر و سپاسش هست این رحمت خداوند که مشمول ماها شده قل فضل الله و رحمتی و برحمتی فبذلک فلیفرحوا صمؤت خوشحال باشه به فضل و رحمت الهی که اون شخص این فضل و رحمت الهی را در خودش هم درک بکنه نه این اینکه که انسان بگه حالا خداوند صاحب فضل بر من صاحب رحمت بر من نه اینی که بتونی صفاتش هم بگه حقش را به جا بیاره شما نگاه بکنید از این و این دوستا که نشاستن تا این وقت این ساعتی که اومدید از اون لحظه‌ای و غیر از این ساعت از اون ساعتی که خودتون مدرسه نشاسته کی هست که شما را انتخاب کرد نجات داد بلندتون کرد غیر از خداوند کی هست که در دل اونها علاقه مشوق مادر بودن یا امام مسجدی بوده یا هرکسی بوده یا اون شوق خداوند در دل خودتون همه اینها فضل و رحمت خداونده که انسان باید شکر و سپاسش بکنه اون الحمدللله رب العالمینی که در سر نماز میگه از باشه و گفتم پرورش جسمی ما پرورش مادی یک طرف که جای شب و سپاسه شما دقیق بکنید پرورش مادی ما از اون موقعی که یک ذره آبی بودیم در کمر پدر یک ذره آبی که یک سلول اسپرمی بیشتر نبود یک سلولی بیشتر نبود یک اسپرمی بیشتر نبود چند تا نوترون و پروتون و کروموزوم و دی ای و آر این ای بیشتر نبود اینها این آبها این اون قطر آب اون آبی که 400 میلیون میدون توش بود یکی از اون اسپرم ها به مقصد میرسه در رحم مادر با تخمک آمیخته میشه با حالت خسومانه فیده ها خصیمون مبین خصومتانه یعنی با سرعت خودم یک به جایگاه خودش در سر رو بتونه زیر تخمد بزنه همه سبقت میگیرن با عجله میرن به طرف اون تخمد یکیشون فقط از اون اسپرم که ماها بودیم موفق میشه که سرش رو دیگه اسپرم بزنه سر تخمک بزنه و هورمونی در بدن مادر ترشون بشه و اونجا به کسی دیواره رحم از اونجا عنوان یک خون لخته اون آب بشه خون لخته بعد اون خون لخته به مرور زمان بشه گوشت بعد اون گوشت بشه استخوان ثم که چون العظام بعد از اون روی سخون گوش بیاد و بعد ماه چهارم در چهارمی ما روش بیاد خداوند بفرست ملائکی که در جنین روش دمیده بشه و بشه یک انسان که مستحق نماز خوندن و قصدن خب این مراحل پرورش جسمی این پرورش جسمی این منته نعمت از کیه ربی الله، ربی الله اللذی ربانی منو خداونده که پرورش داد این پرورش جسمی سبحان الله یک ذره آبی بیشتر نیست آب ای یک سوزان که میلیون میلیونها بار ریستره میاد یک انسانی مثل ماها میشه کی هست که پرورش داد اون اسپر که در هفته اولش اینقدر بیشتر نباشه خون لخته ای که از سر انگوشتم ریستره اینقدر خون لخته بعد از اون در هفته در هفته چارم بشه چهار سانتیمت این قد بیشتر نشه چهار سانتیمت این قد بشه گوشت بعد از اون در هفته هشتم استخان بشه بشه هشت سانتیمت تا چهارده سانتیمت تا کل جنین که الان بخار در ماه در چهارمین ماه میشه یک جنین متکامل که به اندازه چونزه تا بیس سانتیمت خب کی این پرورش رو گذاشته؟ چی اون برنامه دقیق در اون سلول که از سر سوزن خیلی ری سر قابل قیاس با سر سوزن نیست چه برنامه در درونش خداوند نهاده بود که اون برنامه باید طوری عمل میکرد که چشم اینجا بیرون بیاد گوش اینجا بیرون بیاد دهان اینجا بیرون بیاد موهان اینجا بیرون بیاد دست، معده کلیه، قلب کی هست که این برنامه، اینچین پرورشی را داده آیا احتمال داره این قطره ای آب، این ذره ای آب بدون پرورش دهندهی باشه؟ کسی پرورشش نده، کسی تنظیمش نکنه، منظمی نداشته باشه، برنامه دهندهی نداشته باشه، صدفه مجدد یک تصادف فضایی، تصادف کونی ایجاد بشه؟ آیا احتمالش هست؟ خیر؟ اف الله شک، شک دارید در پروردگار که خالقه، که آفریننده هست؟ باصی خداوند میگه اف الله شک یعنی چی؟ جواب چیه؟ یعنی هیچ شکی نیست، هیچ تردیدی نیست، هیچ گمانی نیست. یک گمانه اون یک گمانه اونم این که فقط خداوندی که پرورش داده. خداوندی که ما رو خلقت کرده و آفریده. بحث تربیت یک قسمتش بحث آفرینشه، بحث خلقه و یک یک یک قسمتش بحث پرورش معنوی هست که بحث رحمیه. که چون ما را خلق کرده راه هدارت هم برامون هموار کرد و پیامبران را فرستاد برای ماها پس این دوتا تربیت هست این نو پرورش هست در کلمه رب در کلمه پروردگار ما را پرورنده با چی؟ با خلق و این آفرینش و با اون معنای روحانی از قرآن و سنت که ما بتونیم انسانی بشیم مکرم نلاتی نوت. یک انسان بیلیاقت بی لیاقت نباشیم لیاقتمند باشیم حداقلش خداشناس باشیم و سر به سجده خدا بزاریم این کرامته این شرفه این یک رتبه ای هست که خداوند این مزیت را به ما داد به حیوانات نداد این مزیت خیلی بسیار بالا و شرف و منکانه بالایی هست که خداوند به ما داد تا جایی خدا من که خداوند وقتی که پدرمون آدم را خلق میکنه دستور میده به ابلیس و ایقونه و همچنین ملائکه و ایقونه لیل ملاکه دستور ل آدم ابلیس آب و و کنم ال این از شرف انسانه که دستور میده ملائکه هم سر به سجده انسان بدنه چه موقع این شرف انسان پیدا میکنه وقتی خدا شناس شد ولی که اگر خدا شناس نشد ولایک کل انعامی بل هم دیگه انسان از حیوان هم پس سر میشه. اون انسانی که جنایتکار خلافکار اون انسانی که خداشناس نیست سر به سجده خدا در نمیاره اون شخص تربیت معنوی نشده خودش خودش رو محروم کرده چون از خودش اراده داشته و خداوند هم اسباب هدایت رو براش گذاشته ولی خودش نخواسته حالا اینکه معذور هست یا نیست دست خداوند در روز قیامت پس ما باید سرگزار و سپاسگزار این دو تا چیز باشیم تربیت بدنی و تربیت معنوی که در کلامه رب نوفته است و ربی الله الذي رباني و رب جميع العالمين بنعمه و همچنین تمامی مخلوقات عالمین عالم عالم بر خداوند یعنی دلالت بر خداوند میده بر خالق میده عالم به خاطر همین عالم ماها همه عالم بر وجود چی بر وجود الله به خاطر همین اینجا خداوند میگه عالمین در آیه قرآنی که بهش استدلال میکنه الحمد لله رب العالمين رب عالمینه پروردگار عالمیانه پروردگاره هی هرچه مخلوقه غیر از خدا همه عالمان. چون دلالت بر خالق میده مخلوقن حادثن این حدوثشون دلالت بر چی میده؟ خالق میده آفریننده میده هر کدوم از ما تحت تک ماها دلالت بر وجود خالق میدیم پس خداوند ما را پرورش داده و رب با جمیع العالمین به با نعمتهاش ما را پرورنده و گفتیم نعمت هدایت که غیر از این نعمت جسمی از چشم و گوشی که خدا به داده که باید قدرش بدنیم بزرگترین نعمت نعمت اسلام و نعمت سنتی که خدا بهمون داده معنای روبیت که در قرآن بحثش میشه هم جنبه خلق بهش اشاره شده هم جنبه هم جنبه مادیش و هم جنبه معنیش از اون به که در قرآن اومده در کلمه رب که به معنی مادی اومده فرمودی خداون به موسی که وقتی میره پیش فرعون بعد فرعون میپرسه تمر ربکما یا موسی موسی به هارون میگه که فرعون میگه که پروردگار شما کیه پروردگار کی از پروردگار سوال میپرسه خداون چی به میکنه بر موسی که بگه میگه قال قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا پروردگار کیه خالق یک طرف مادی و هده هدهت پروردشی چیه؟ پرورش معنوی پس کلمه پروردگار این دوتا جنبه را درور میگیره جنبه مادی و طرف دیگر جنبه معنوی قال, قال, قال ربنا الذی اعطا کل شیئن خلقهو ثم هدا ثم هدا پس این دوتا نعمتی که خداوند در این آیه اشاره میکنه از نعمت های پروردگار بر سر ما که در کلمه ربش نهفته است ربا در لغت خودمون به عنوان پروردگار خدا ازش یاد میشه مشکلی نیست در لغت خودمون از رب از پروردگار به عنوان خدا یاد بشه ولی کلمه مترادف الله نیست ها. فکر نکنید الله همون خداست الله یا الله ندازش که ما, ما الف مونیکا مفخمه عربی مونیتوریه عربی مونکجوجه کلمه ی الله به معنای معلوه از الوه گرفته شده معنای معلوه کسی که معبود کسی که پرستیده میشه به معنای معبود میاد اون معنای خاص خود خودش داره اما کلمه رب نم کلمه رب رب معنای پروردگار میاد می معنای خدا میاد معنای سید میاد معنای رئیس میاد خود کلمه خدا اشکال نیست چون کلمه رب به بشر هم اطلاق شده مثلا میگن رب البیت که یعنی صاحب خونه یا رئیس خونه یا مسئول خونه یا مسئول یک جایی رب گفته میشه زن خونه گفته میشه رب بطول بیت عنوان سرپرست عنوان رئیت عنوان صاحب اینا یاد میشه کلماتی هستن که جا داره که استفاده میشه چون بعضیا انکار میکنن وارد میشن میگن نه اصلا کلمه خدا درست نیست مثل خدای رو خدای فلان خدای این نمیدونم فلان میگن در صلای این خدای کامپیوتره درسته این کلمه ها مقید استفاده میشه نه از باب مطلق از باب مطلق وقتی گفته میشه خدا تو ذهن همه میاد چی رب دیگه تو ذهن آن شخسی که نمیاد خدای کامپیوتر یا خدای نمیدونم اینترنت یا خدای فلان خب این پروردگاری که به من اعم کیه و هو معبود لیث لی معبود سوا این خداوند خالق معبود منه ما گفتیم قبلا اشاره کردیم توحید علمی و توحید عملی خداوند وقتی که توحید علمی را در قرآن اشاره میکنه به خاطر چیه؟ به خاطر الزام ما به توحید عملی سر به سجده گذاشتن اینجا وقتی که میگه که فَا اِذَقِيَ لَكَ مَن الله فَقُرْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِعَ الْعَالَمِينَ بنعمه چیه بل پروردگارم خداتن یک به توحید علمی به خاطر رسیدن به توحید عملی و اونم و هو معبودی و اون خدا معبود من است یعنی اون کسی که باید فرسیده بشه یک تا لیس علی معبود سوا که جزء او من خدای دیگر برای متک مسحب مستحق پرستش باشه دیگه ندارم یعنی معبودی که مستحق و لیاقت پرستش رو داره جزء او من قبول ندارم اینو ما با با باش اعتقاد داشته باشیم به بان الله هو الحق و من دونه هو الباطل. خداونده که فقط معبود به حق یک تاست که مستحق پرستش و عبادته ولی ما دونش کسانی که صدا و فریاد زده میشن اونها دیگه مستحق پرستش نیستن چی میخواد بودا باشه چی میخواد گاوه هندوز باشه و هر کسی دیگر میخواد باشه اونها مستحق پرستش نیستن اونهایی که پرستیده میشن خاطر همین پروردگار من کسی که مرا آفریده فقط مستحق پرستشه اونهایی که واسطه قرارش بینن اونا پروردگار نیستن. خدابندی که فقط پروردگاره و اون شخص است که فقط مستحق پرستشه. بخاطر همین گفتیم این آیه خداوند میگه ذالک بان الله هو الحق یعنی الله که معبود به حقه و اونهایی که غیر جز خدا پرستیده میشن صدا زده میشن فریاد زده میشن بر و والدلیل قوله تعالی الحمد لله رب العالمین این برای قسمت اول چه دلیلی داریم که خداوند پروردگار ماست؟ پر فرموده خداوند الحمدلله رب العالمی انف فلان خودتون میدونید الحمدلله برای استقراب یعنی تمامی حمدها و ستایشها و درودها و سپاسها، ستایش و سپاس، هر دوتا با هم چه فرقی ما هم داره؟ ستایش و سپاس. ستایش ذکر خوبی و نیکی هست سپاس تشکره این کلمه الحمد تمامی ستایش ها و سپاس ها را در بر می گیره یعنی ما داریم تشکر می و ذکر و یاد خیرم می کنیم خدایا شک و سپاس گذارت از یک طرفیم شک از یک طرفیم و ستایشت را می کنیم بر این که ما را خلق قد از طرف دیگر تو فقط خداوند مستحق اینی که من سر به سجده بذارم این ستایشه الحمد لله رب العالمين لله لله یعنی للاله برای خداوند لا يا برای ملکیت ما یا برای استحقاق یعنی تمامی حمدها فقط مستحق و مالک کی خداوند ما هرچی داریم در از یک تشکر می کنیم اون فقط فز اونم ظن مننت خدا هستش یعنی خداوند در هر جایی آثار نعمتش هست وكل شكرها و آخرش خاتمه اش آخرش به الله الله که صاحب نعمته بس لو برما چنانچه گفتیم قل بحسب الله و فبذلك فبذالك فليفرحوا هو خير هو خير مما يجمع الحمد لله رب العالمين فردقار عالميان که جز جزء هم همه جز جزء عالميان حساب میشه و از عالم گرفته شده از عالم گرفته شده که از عالم یعنی عالم بر خداوندن دلالت بر خداوند خالق میده. و کل ما سو الله عالم و انا واحد من ذلك العالم یعنی بگو عالمین هر چیز جز خدا هستن و منم یکی از اون چیزهایی که در عالم هست پیدا قیل لك بما عرفت ربک بوچی الله را فی توارد گراتشنا فی فقل بایاتی و مخلوقاتی سبحان الله چرا اینجا معلف، معلف این متن کوچک، اومد آیات را یک طرف گفت مخلوقات را طرف دیگر؟ یعنی گفت قلب آیاتی و مخلوقاتی و من آیاتی اللیل و والشمس و شمس و از نشانه ها شب روز خورشید ما و من مخلوقاتی از سماوات و سب از مخلوقاتش آسمانهای هفغانه و زمینهای هفغانه و, و من فیهنه و ما بینه و اون چیزهایی که دروبر خودمون را میبینیم چه فرقی هست بین آیات و بین مخلوقات چه تفاوتی هست آیات اون نشانه های نظری هست اون نشانه هایی که درش یک نوع اعجاز هست که انسان با تفکر و تمعن و نگرش در اون بهش میرسه مثلا بلفرض انسان با خودش فکر میزنه زمین چطور داره خودش میچرخه زمین چگونه در این فضا اصداده و داره حرکت میکنه کنه هم همیتور دیگر ستاره ها سیر ها هم همیتور چطور این شب میاد و بعد روز بار دیگر روز میاد و این نوع نظر و استدلال که به عنوان نشانه از اسیاد میشه در, در زندگی نامه ابراهیم خلیل الرحمن هست که میاد استدلال میکنه از اون چیزی که در آفرینش هست اون چیزی که به حالت طبیعی بر نگشته یعنی برای انسان یه چیز عادی نشده بلکه یه چیز دقیقی هست مثلا ابراهیم علیه السلام میاد استلال میکنه به ستاره روز که میاد میگه خب این ستاره کجاست ستاره که دیگه نیست یه چیز اون چیزی که متغیر اون نشانه خب الان روز شد اون ستاره نیست شب اومد ماه را دید فلما ماه را دید دیگه گفت بعد ماه که غروب کرد گفت ما رو دوست دارم ما هم الان روزه من خدایم را میخوام خدایم کجا رفت در روز دنبال خدا میگشت میخواست فکر اونها را محق بزنه خواهد جرقه ای را در ذهن ایجاد بکنه که این که شما میبینی که داره میچرخه الان شب هست و سردار روز نیست دلالت بر یک نازمی داره که این را نزد داده که شب ها باشه روز نباشه ایک نشانه ای هست خود ماه که داره تغییر میکنه منازل داره برای خودش این منازل ماه این ذهب و سانه هایی که ماه داره میچرخونه و دقیق طول و غروبش مشخصه عمر ماه هم مشخصه همش منظمی داره و اون نازمش کیه؟ پروردگار جهانیان و خالق اون ماه و خالق دیگر مخلوقات پس این مسئله نشانه نشانه یک امر نظری هست که به اون استدلال میشه بر وجود خداوند همونطور که گفتیم ابراهیم اینجا استدلال میکنه بر وجود الله یکتا و از این نشانهای چیلی یاد میکنه میگه و من آیتیه لیل و النهار و الشمس و القمر بعد عدلش رو از قرآن میاره آیات خداوند مثل شبه و روز خورشید و ماه حالا در چیش الان بعد در آیه شرح میدیم و از مخلوقاتش آسمون های افقانه که ما نمیبینیم آسمان رو میبینیم ولی آسمان هفگانه رو فقط با نسل میتونیم ثابت بکنیم زمین هم اینطور ما زمین رو قبول داریم آسمان رو قبول داریم کسی نمیاد بگه چون آسمونا هست خالقی هست و یا نشانه ای برای وجود خدا هست یکی چیز طبیعی شده برای انسان زمین هم برای انسان یه چیز طبیعی شده ولی وقتی که جنین بحثش میشه به عنوان نشانه یاد میشه وقتی که عنوان اون آب و روغنی که بدن تولید میکنه به عنوان یک مایل که زیر پلکای چشم باشه به عنوان یک نشانه و یک بروهان و یک دلیل ازش یاد میشه چرا؟ چون این بدن با قوت داره این ماده را میسازه اون ماده که تا افتاد در جزیر صف یخ نبنده خب این نشانه هست، این آیه هست این دلالت بر قدرت و توامندهی خالق میده قدرت و توامندهی خالق خیلی بالا بوده بله خب دیگر مخلوقات هرچند که خیلی عزیمن ولی که برای انسان چون طبیعی شده دیگه کسی بهش استدلال نمیکنه. بخاطر همین اینجا آیات را یک طرف، مخلوقات یک طرف دیگه میکنه. خلق یک طرف ولی اون چیزهایی که در این خلقا فر نشسته، درارت بر وجود خالق میده که نشانه وجود خدا هست طرف دیگه. آیاتی که نشسته استدلال میکنه، دو تا آیه ما خوندیم. اول فرموده خداوند قوله و من تا... و قوله و تعالى و اياته الليل والنهار والشمس والقمر از آیات نشانهای خداوند شب و روز و خورشید و ماه لا تسجد للشمس ولا للقمر دو تا این دو تایی ای که من دارم بهتون مثال میزنم خدا میگه خیلی عظیم و بزرگه چرا بزرگه حسین بحث خورشید و ماه که شب و روز به خورشید برمیگرده و ماه هم برمیگرده به اینکه ما زمان بندی خودمون رو بدونیم خدا میگه که اینها خیلی وزرگن. جز جزء نعمتایی که چشه هر منکری را قبول کرده یعنی هر کسی نیازمندیش به خورشید را راحت میتونه هر کسی میتونه درک بکنه که نیازمند خورشیده خورشید نباشه علفی نیست خورشید نباشه دیگه سرسبزی نیست اون درخت نمیتونه به رویه خورشید نباشه یعنی یخ بندان انسان نمیتونه حرکت بکنه خورشید نباشه یعنی انسان از کار کاثری باید بیفته چقدر انسان به لرزش در میاد و در زمان صحابه هم دیدیم حالا که امروزه برای انسان هیچی طبیعی شده وقتی خسوف و کسوف میشه ولی که یک نشانه هست خدا نکنه خورشید از ما حفظ میشه چی میشه ما تبدیل میشیم به قطب شمال و قطب جنوب که آدمیزادی اونجا نیست و قدم هم نمیتونه بذاره، اونجا مگر در زمان خاصی در بره زمان خاصی، وانم شش ماهی که روزه نه شش ماهی که شبه، شش ماه شب، چی کار میکنه در قدرت شما؟ یکی از نعمت های بزرگ اینجا خدا من یاد میکنه خوشیدمی با جو که نعمت بزرگیه، از آفرین آفرینش آفرینش های خیلی بزرگ من هست، ولی مستحق سجده نیست. لا تسجدو للشمس ولا للقمر وسجدو لله الذي خلقهن سجده بکنه با اون کسی که اونها رآ فرده ان كنتم اياه تعبدون اگر الله يكتارا مفرسی بقبول داری با اون معبود بحق نهی که تنها خدا بان ما رأس سجده کردن با این مخلوقات جامد من مکنه حتى برای ملائکه با قیامبرانش من مکنه خدا باندار قرآن مکنه ولي امركم ان تتخذوا الملائکه والنبئین اربابا مکلمه رب قبلا شرح داری رب کسی که مستح فرسشه پروردگار خالقی که مستحق فرسشه کجا گفتیم این کلمه قصری خاتمه‌ای که حدیث ابن خاتمه‌ای که یادتون سنه راسته اتخذوا و رهبانهم اربابا من دون الله بعد اومد گفتی پی رسول ما ارباب رب قرارشو میدن چی گفت رسول الله علیه و اسلام آنها حلال حلال خدا را حرام میکردن شما حرامش نمیگفت آری بعد آخرش گفت تلک عبادت هم این عبادت اونها هست یعنی عبادت خود به خود اون چیز را تبدیل به چی میکنه پروردگار خود به خود صدا زدن اون مرده صدا زدن اون بوت اون بوت و اون مرده را تبدیل به چی میکنه معبوت و رب بخاطر همین خداوند چی میگه در بحث نصارا علماشون رب قرار دادن یعنی معبوت قرار دادن اتخذ و, هم و هم من همین اینجا هم خدا ما را از رب قرار دادن از معبود قرار دادن من میکنه ولا لا یا امروكم اتتخذو الملائکته و النبیین اعبابا ای امروكم بالکفر بعد از انتو مسلمون آیا خدا دستور به کفر میده این رد بر اونهای اهل تثبوفی هم که رسول الله را رسول الله صدر و ازش میتربن به عنوان یک شخصی که استغاسه میشه اون کسی که به دادشون برسه دادشون رو پیش رسول الله صلی میبرن این رد بر اونها هست خداوند هیچ وقت به امن نکرده که اونها رو رب قرار بدیم و معبود قرارشون بدیم اونها بشری بودن که مزیتشون با ما ها در چی بوده در وحیت قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی مزیت اونها برتری اونها در وحی بوده ولی بشر مثل ما بودن ممبسل ممبسل میخوردن و می عاشان و میخوابیدن بله پس خداوندی که این مخلوقات عظیم را خلقت کرده باید شما به عظمتش پی ببرید نه که اونها را تعظیم بکنید بلکه الله یک تار را تعظیم بکنید یعنی هدف از این مخلوقات بزرگ این که شما دلالت بشید ارشاد بشید به سوی بزرگ عظیم اگر خورشید می که خیلی عظیمه خیلی بزرگه میلیون ها بار بزرگتر از این زمینه تابشش نمی ایسته یک سر داره تابش بهتون میده گرما بهتون میده یک سره داره نور بهتون میده که این درختان شما سبزیحها و علب های شما برویند و حیوانات شما بخورن بعد شما از اون گشت تو عرففا بخورید از اون نان و گندم بخورید این نمت های که بهتون داده دلالت بر اون نیم. در که این بوزو خلق کرده این شینی یعنی آخر نتیجه اش کجاست سر به سجده گذاشتن سر به اطاعت در در آوردن این آخره نتیجه هست سجده نکنید این خلق منه این آفرینش منه این نشانه منه منم فقط مستحق عبودیت نه اونهایی که خلق کردم اونها مخلوقات منه. هستند بعدی هم که اشاره بهش میکنه و قوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ترودار شما آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید 6 روز هر روزم به اندازه هزار سال ما در شش روز آفرید با صبر آفرید دعوتم با صبر خداون نمیامد با, با كن فیکون آسمان ها و زمین را بیافرینه در شیش هزار سال خودمون اومد آسمان ها و زمین را آفرید این کمی کنیست زندگی با صبره با تحمل طلب علم با صبر و تحمل بعد نفس انسان حفظ بکنه با طلب علم بر بعد تحقیق بر حفظ کلام خدا بر قرآن خدا بر تطبیق سنت انسان باید خودش استقامت بده بر صبر اینجا هم وقتی که فکر می فگم نکنید که این مسال شش روزو خدا من میزنه فقط موجب خبر خیر به خاطر درک به خاطر اینکه بدونید هر چیزی سب میقاد، تحمل میخاد، زمانه میخواد استقامت میخاد. پروردگار شما کتیه است که آسمون‌ها و زمین را آفرید، در شش روز سپس مستوی بر عرض شد، یعنی خودش را از این مخلوقات جدا ساخت. دیگه خداوند را دور تو دنبالش نگردید که اینجا را خدا ببینید یا اونجا را خدا ببینید، در این کره زمین دیگه دنبال خدا نگردید، خداوند بالای عرشه رسول الله صلی الله علیه و وقتی که آمدن از عظمت خدا یاد بکنن وقتی که رفتن به بالای عرش وقتی که, که بر... رفتن به بالای آسمان های هفتگانه نه به بالای عرش رفت وقتی که رفتن به آسمان های هفتگانه اونجا که جبرئیل گفت من دیگه نمیتونم بیام اگر خدا همه جا بود که نمیرفت بالا خدا من رسول الله صلوات علیه و سلام انتخاب میکنه برای اون مقام که از نزدیک با محمد با رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت بکنه صحابه گفتن یا رسول الله یا پروردگار رادیدی فرمودن چی؟ حجاب و نور بین من و الله حجابی از نور بود. لو اشرقت، حیث صحیح مسلمه، لو اشرقت صبحات وجهی وجهه لأحرقت مده بصره من خلقه. او که مقاله علیه الصلاة والسلام، حجابی از نور بود بین من و اگر یک تابش نور وجه الله از اون عبور بکنه، تا جایی که چشم الله کار میکنه، تمامی مخلوقات آتش را گرفت. این حدیث الارد بر چی میده؟ عظمت لا متناهی پربردگار، خوپسیارش هستیو زنیاد پس خدا را چگونه در روز قیامت ببینیم اینجا جمالیا قطعش نداریم، این مخلوقات تحمل تابش یک نور بچه الله را ندارد، ندارند ولی در روز قیامت خداوند تحملی را به هم میده که ما پروردگار را ببینیم و یکی از بزرگ نعمت هایی که رسول الله علیه و سلم از خدا خاصه نگاه به صورت پروردگاره. اللهم متعنى بالنظر إلى وجه كالکريم این بزرگ نعمت رو پروردگار بهم میده و نگاه کردن به صورتش. این بزرگتر نعمته ولی در این دنیا این مخلوقاتی که ما هستیم با این توان ناقص این ناچیز توانشو نداریم و این مخلوقات توان تحمل یک نور بچه الله رو ندادنن این کمال نقص مخلوقات رو می که در قبالش کمال حسن صفات خداوند درش هست یغش لیل النهار یطلب حفیث خیلی جالب این آیه وقت تموم شده از سی دقیقه گذشت یوغش شله غشا اون پوششی هست که بر سر روز میاد خداوند شب را بنوانی یک پوشش تلقی میکنه خیلی جالبه انسان وقتی مثلا شما از هواپی ما بلند میشید میدونی به طرف هند به طرف شب دیدید شب از اون طرف اینجا روزه پرواز میکنید ساعت دوی زور دو سه ساعت که نکشیده رسیدید بالای افق میبینید مثل یک لباس والله قسم میخورم مثل یک لباس میبینید یک لباس سیاه رنگ داره میاد با چشم میبینید از بالای حافیما که دارید میدید به طرف مالیزی یا به طرف اندونیزی یا به طرف هند وقتی که در روز پرواز میکنید مثل یک لباس یقش لیل یطلب و حسیثا یعنی شب به دنبال روزه یطلب حدیثا بینید مثل یک لباس داری میپوشه دوباره باز، بار دیگر هی میچرخه حدیثا یعنی پیدرفه پی شتابان یعنی روز رو میبینید شتابان روی ها به ما داری پرواز میکنی یهو میبینید شب شد یعنی اون روز کاملا پوشانده شد خصوصا الان نماز عصر شما نگاه بکنید یک ساعت سطن یک ساعت و بیشتر فاصله نیست یهو میبینید شب اومد پوششه مثل لباسی که انسان میپوشه خداوند اون روز رو ما میپوشونه با اون شب و الشمس و القمر و نجوم خورشید ما ستارگان مسخراتا تسخیر شدن این خداوند تسخیرشون کرده با امر خودش تسخیر خودش خلق الخلق والعم برای خداوند خلق آفرینش و امر از طرف دیگر که با امرش اونها را گرفته آفرینش کرده دیگه اونها را رو روانه کرده داره تدویرشون میکنه چون لازم, لازم به خلق و پرورش خلقی مادی ادامه اون مسیرم هست، تدبیرم هست، آفرینش یک طرف تدبیر اون امرم طرف دیگر، تبارک الله رب العالمین، تفردگارمون، رب العالمین، متبارک، پاک از زهر، از تمامی نقایش. آخر دعوان الحمد لله رب العالمین و صلی محمد و علی محمد.